صلا الله علیه و سید ناصرالله و آل الله این که بود که اگر ما آمله یا نحن محاقات خرار بگذاریم که خاضی به نقو حکم میکنه محکومشی خرمدن سر صورت رو برند که اصلا از مسائل آتر سوالش میشه کنید در صورت و دو صورت خرمدن رشوان در یک صورت خرمدن و در قصادش به در قصاد چی بود؟ اقارت محکوم مویزای شیرازی قنقه شد ناقص بود تکیم شد از اول هم من این این خواهر از داغه اند مراد الفساد به صورت افیره شدیه دلیده است. و صورت اول همه و بسیفه صاد همه رشاب المحن المسلی که باشه ساده باره علا دفعه یعنی اشون مخواهم با اون قواهر درستش بکنن به فرک که ما با قواهر بیدیم اینجا پاسده هست که قواهری که محتمل بود در ما این اموری که محتمی بود چهارتا شما هسته دید ایش رو میگه رشارش رو رش دادنش دوی دفع مبیه خونه رو میگه به طرف مقابل در مورد یه ملیون این رشن الگی ها با این معاملته اگر این رشن شد تیه ده و دفعه حرامن از این دفعه حرام میشه چون رشن هست. و همه دایی جامعه او سه حقا معامله اون وقت چون جز جزا آثار قدیدی معامله است یعنی تفکیر نمیشه لگه این درم احض بشه اگر در حرام خود اولا موشه حرام از این را مخونم وارد بشن قائده را این را و حوالا به جامعه و سهر بر معامله چون نمیشه معامله صحیح باشه و درم حرام باشه چونی که از لوازم قدیدی هر معامله این تفکیر متسلمه نمیشه به شما بگن شما این بینیتون احضتون درسته اما تصمیم متسلم نکنم اگر تصمیم حرام شد اتحاً با ذهن سرحتها سرحت المعامل ملازمتون لوجوب دفری این با وجوب دفر ملازم خلازم هم قانونی هم غرفی داره المنافی حرمت دفر الا امیوم نا اصدق و هرشا علی دفر من این تو که این درد بشه نیست درد بانوان وقاقه این بشه نیست اون عرب فه این رشا اما ما یه به نفس المعامله اونی که رشاست خود معامله از ما درد یعنی وقتی من خونه رو فروختم به یک میلیون خود این رشاست خروش خانه خود این عرب رشاست یه به نفس المعامله ورشت و قوار مل کل حاصل ده بالمعامله این ملکی که حاصل میشه و حرمت المعامله اون وقت وارد بحث اصولی میشن و حرمت المعامله لعجل اله اتحاد به خاطر اتحاد بارشا لایونجب و قساده ها اشاره دارم در اینجا به قابله به اصلاح اجتماع امانه یعنی اگر ما گفتید ما حرامه به خاطر بشه بودن این منافات نداره با یعنی موجود فساد نیست شه این به واسه اكران که انوا لشان ده عنوان دلیل می بینن یک دلیل حرمت نشه یک دلیل وجود وفات به عقل این عقد مجمع ما بین دو عنوانه از یک طرف عقد اوتبل حضور می میگیره از یک طرق غرمت رشیر نمی دید به این طور و غرمت و معامله این معامله حرام چرا حرام این معامله لحظ به اتحاد مر رشاد که معامله مثلاق رشد, رشد این بوی مبنای چیه بود مبنای چیستایی که بالد امتناه هست و اللہ ممکن است اگر معامله حرام باشه رشد حرام باشه و معامله حرام نباشه یعنی اگر ما مبنای امتناه رو قبول بکنیم بگیم چند رشوه حرامه معامله هم که برش منطلق میشه اون حرامه لکن که حرمت و معامله لا یو با فساد داره معامله این رو برگویلن داریم روشنگ رو اشخال مرمونی زیادی پس اگر ما بایه اجتماع اگر قائل به این اجتماع بشیم اصطلاح هم بسطفیقی از بزرگان اون وقت این طور بگیم حرام این معامله با رشه صرف نمی کنه اینه عهد لیکن حرمت به سرایت و عرض نمی کنه عرض حرام نیست این کسانی که بالی به شما کسانی که بالی به امتناع میگن چون رشه حرامه و متحده با عقده عقد عرض هم حرام میشه از دو مزنه شد یکی سرایت یکی عدم سرایت یکی اینکه عرض حرام باشه چون اتحاد داره با رشوه. یکی که هرگز حرام نباشه چون قائل به اجتماع هستم قائل به امتناع نیستیم. خوشا نشه. این هم یا حتی اگر قائل به امتناع شدیم و گفتیم هر حرامه و معامله حرامه حتی اگر قائل شیم، حرمت ملاظمه با پساد نداره. و حرمت المعامله لعجل اتحاد معارشه. این لعجل اتحاد معارشه خیلی موجبتون فرامند. یعنی گناهان برای امتناع اجتماع رو نه بنامان در این سنا یه اسم اتنا را گوشن از اتحاد مردشان این حرمت لا یوجه با فساد معامله این اون مقنوع اشتا من در اگه یاد موارسون باشه در قبل در در بحث چهار تا را حد که یکی مسئله حرمت معامله ملازم با فساد هست یا نه یکی مسئله اجتماع نه؟ یکی مسئله بیه حرام یکی مسئله این که آیا شرط فاسد محسد هسته نه با این مسئله از بگیم تا در مسئله نتیجی دیگی بکنیم معلوم شد که مرموم میزای شیرادی حضرت الله نفسه نحوه نتیجی دیگی روشن شد ایشان و حرمت کل معامل لعجل اتحاد محرشان یعنی ما به ایمتنا هستیم هر کن همه کسی که نماز در برابر هم حرام اینطوری عالی به هست لکی حرمت معامله دارید و تصاد تلاظق وارد می ممکن است یک حرام حرام باشه اما معناش این نیست که فاسد باشه و یکی گفت دفع و بعد از اگر فاسد نبود ده واجبه لوجوب لوقائده ها علی تقدیر صحت ها اگر معامله صحیح بود لوجوب وقا او خوبه که خود احتضام می‌کنید ماده پول را به خانه رو بکنیم این سوره 60 به تعبیر مرحوم نزهی بعد ثنا به انمد سوره ثانیه ثانیه خودشه این چه شرط نیست طلب تو... توافق فزاده رو ها و فساد ها اینجا چاپ شده یوم آلا ینبی غلطه ینبنی یا یبتنی ینبنی هم استعمال میشه محتمی یا یبتنی ینبنی بهتر به یبتنی و هم از صورت ثانیه پس ظاهران مثل حتها و فسادها یبتنی ینبنی علا کون شرط فاسد مفتدن و عدمی هی از بس بر کن. و عدم کونی هی خب مردم نیزای شیرازی متفقه درم که شیف صورت ثانیه رو اصلا تصریح داره که شرط نیست یه صورت ثانیه قصد معامله را که جعل المحابات لعجل حکمله به امکان له من قدیل تماتبات ایا حالی منش شروط خیلی را مسرحه ده ها که یعنی شرط نیست تباتی برشده اتفاق شده چون رو کردم در خواهدشون اینه مثل توضیح نردم اجماله رو ارزم کنم چون خیلی بزرسیت یه بند هست که حقیقت شرق اون چیزی که لرزنه عقل ابراز باشه اگر اتفاق باشه خارج هم یا بعد از یا قبل از عقل یا بعد از یا حتی اتفاق عرفی باشه نه اتفاق شخصی این رو بناشونه که شرقی یعنی اساس در رفتنیت در شرط اینه که باید در مطمه هر این نامه رو این کتاب رو دوستم به سرسان به شرطی که یک نامه برای من بینیمیسیم اگر این شرط رو قبل از عرض دیگر و اتفاقم کنن شرط نمیزونم حالا چون درداشت به شرطی که می صحبت کردیم از بحثم خارج شدیم توضیح این مطمه اینشادا جای دیگه در دفتش شدیم چون چون خطال برس ایشون ما نیست شیخ ما نیست تواثه هست اما شرط نیست اما مرمومه میرزای شیرازی این رو گذاشت اون قاعده چرا؟ ایشون لعن مناطق حساب شرط مذکور فلعه چون میرزا مصفه تنها یعنی درست این شرط نیست درست این ذهنه دید لیکن و مناطقی این موجوده اون ملاتی که در شرط موجود دوره مناس شرط پاسدی که المذکور فرقر بیان شرطه شرط باید تو اقضیه بشه جارنفی اینجا داری داری اینجا شرق و رو در اینجا تواصیه در اینجا شرطه شرط نیست و تواصیه و که به همون نقطه هست و همه نقطه شیه تقیید و رضا المشترکلت به شرط از غیر سالمه اون نقطه ای که من شعر فساده همون سیگی روز تو دادم یا من مطلقا عرض نبستم عرض من مقیده عرض من مقیده حالا شرط فاصله اگر عرض مقید شد شرط فاسد شد پس عرض محفظ نیست چون مقیده بگیم شرطه ایشون میگه اگر تواثیت شد مثلا همونشه باید میکنه اون تقریب که در شرط مذکور هست در شرط بیرن عرضه بیشه همون تقریب در تواثی لأن منات فساد شرط الفاسد المذورت الاند جار الفی مناتش اینه تقیید و رضا المشترط الفاسد به شرط چون تقیید میشه و هم سالم نیست فاسده چون مغیق کبه یعنی گفته فروختن به این شرط خلا اون شرط فاسد بود اون فروختن به شرطی چیزی مثلا شراب بخوری شراب فاسد بود پس نه بود، شراب فاسد بود نه چون اونه اتضام معایی ایشون میگه تبییر اتضام میشه به شرط مذکور باشه میشه تبییر اتضام به شرط تواثیب هست چون من اومد نکته تبییره و از که قرار رو اینه من به این آقا خونه ده میگیون رو به میگیون بدن خود این مزنش اینه این که تنمانی تو گفته خانه رو به خاطر اینکه که به من حکم میدنم این روزن من حکم این که رشته خانه را بروزن بیهت معلقا در یک مقدر که مقدر باسه بگه مطلب حرام اونه ایشون بگیل این نقطه فرقه نیم کنه اللهم لانیوزه علی اجماع مگر اینکه بگیم اینجا نقطه به ملاق فرقه نمیگردیم اللهم این ایشون بگیم ملاق شرط پاسم موجوده ما به ملاق کار نداریم علی اجماع علا عدم اعتناف شرط رو بگیرم مرسول رو بگیرم حالا ما خود ملاق بشه کی به هر حال شهر در هر روزه اعتبار نداره من نقصیش رو اشاره آبره بخنم من از کردم چون اموره اعتباری قبامشون به ابرازه ده اموره اعتباری در محن واقع در واقع خارجی نیست یه واقع اعتباری دارن این واقع اعتباری قبامش به ابرازه تا ابراز نشه ورد شما اعتبار رو وجود دیگه نمید تو به آرخابش تحقیق خیلی نمید همه اعتب این که ما یک در مرز زن تا ابراز نشه پایده ندارید. یک. دو. همیشه در امور ارتفاعی چون امام شد به ابراز میشه؟ نه در نقدار که در مسئل شده. اون؟ تنده پسر میگه؟ به ابراز. من در نهرنم این طور دورد. این پایده ندارید. این من به مقداری که بخصه من در این که بگیم این مقدار رو ارجاع شرگیش بگونه مثلا اگه من نماز شب میکنم از طرف مثلا خدم از طرف روزی نماز شب میکنم این ابراز کرده ظاهری این که ابراز اینست که این نماز شب من مال او باشه بگیم این مثلا نمیشه اگر شاهر قبول کردیم مرزعش ایسا ایسا سال سواب بخش دیگه چون خود نیابت که بخش خاصی داره که آن یک این خاصی که تو در کلمات از یا حالا اون خودش رو از دفت سال رو خارجی آلا همین مرزاک خارجون بسیم اعتقاض ما هست یا شبه که هست که ما اتفاق کردیم توی اعتبار قبرده اما ابراز نکده نقطه فرنیش میگونه نقطه اگر شما قبردیم اما ابراز نکردیم فایده ندهد مثلا شما رفتیم دارو خریدی که بچه خوب بشه بچه مدید دارو خریدی خردی رفت و خونه که ما بچه خوب کنیم میتونیم داریم برگردیم بگه دو آن من خریدم بخواست باید بشته خوب شده اگر بشته بخون شده میگه نمیشه اما اگه شهر تقریبی میشه من از تو هر به شهر بگه بشه من مریض باشه, باشه این طبیعت احوده اصلا طبیعت ابراز ها همینطوره در مقام ابراز در مقام مرونه شده خاصی بیاره و نزا یکی از دخواست مهم همه اشاره می در بابر اشتماعه همینه اصلا نقصی مهم ها در بابر نه همین. میگن چون امور اشتماعی به اعتباری قنامش به نقدار ابرازه ابراز اون رو این اگر گفت نماز بکن و گفت درس نکن شما هر در با هم جمع کردی میگه چون نمازه و چون خفصه هر کدوم به خودش خوبش محفظ این آنوان نمازید از این نقشه همینه میگید چون اگراز این ما دنبال مرزاق اگرازیم میگید آقای این نماز با قصر یکیه با قصر این حریفت گوهدادی دو همان انتظاه میشه ما کار به ما به دنبال و به دنبال اونغانیم رفن اساسی که الان در کلمات اصحاب ما تو مطلعه اشتناعه من همینی رفن یا به تعدیلی دیگر در اعتبارات قانونی همیشه حیثیات حیثیات تقییری هستن نه حیثیات تقییری یعنی وقتی با نماز بکن عنوان نماز قصد عنوان قصد حالا با هم دیگه جمع که بخم جمع بکنی اون قصد باونم نماز واقع خارجی از محروم از این را شدن که واقع خارجی یکی داره دو, دو عنوان داره و این واقع خارجی که یکی شد نمیشه هم ملاد که که شما هم مصده هم مصده جمع بین مصده و مصده نیمیده جواب مساله و مخاصد در اعتبارتخانی تابعه عنوان هست نه تابعه واقع مادام شما عنوان صلاح داری این صلاحه عنوان قصر قصر اگر اینکه تیاث شما ایتیاث تبییدی گردید شما که را من از کردن محتضای قاربه اولیه حیثیات در اعتبارات قانونی حیثیات تقیدی است، در احکام عرق حیثیات تقیدی است. در میار تر ببینید دوزا حیثیت هر وقت خود حیثیت موضوع حکم را منشه اثر بود اینه میشه اگر خود حیثیت منشه نبود متحیط منشه را میشه حیثیت اگر حیثیت و متحیث با هم دیگه به حیثی که اثر روی حیثیت باره اینجا رو اصطلاهم بشیم حیثیت تغییری اما اگر اثر فقط رو متحیث باره نه رو با حیثیت حیثیت چیه نداره برای خوبش اونواز نداره وقتی بشیم حیثیت تغییری اصل اولی در حیثیت در احکام شرگیه اصلاقانونی اصل اولی حیثیت حیثیت تغییریه و در احک تا تاریخی است این نکته رو برای ملاحظه باشه حال برابری ایشون میگه الا علی و دع الا اشماء علاوه بر اعتناف شعر بدون نشور برآ ما فقط اون واقعیه چون اگر ذکر نبود ارزش نداره ذکر نشود و تواتی باشه ارزش نداره اینا میگن اجمائیه یعنی, یعنی به لایق تعبوت یعنی در سلام به شکلی خوشا اینا مثل این حالا بازی اضافه میشه چراقه خاموش بخونه دست داده بگید که من بیا این این طوریه ما باید که این نقطه که ما مثلا علم این حقوقی داشتن این نقطه نقطه داره این میشه با هر چراق روچند یک چراق خاموش کردید دست داده بگید که اتا ساریم راز بگید این میشه چراق روچند هست منشه این اجماعی نقطه او اعتبارات به صداق امور اعتباری امور اعتباری روح نشت ابرازه شما هستیدار اعتبار تو نفس رو خود میکنم هیچه عرضش شده ابراز که کردی چازه میشه اعتباری این یک دو به نشدار ابراز هم موقع این خیلی نفسی شوکیش نشان ها هدف این بود تواضع کنید اگه بدت خوب بشه دیگه کادو نیست تو گفت این دارو رو خریدم تموم شد اون مقداری که چرا علیه الان همین مذکوره این نکته رو خیلی دقت بکنید که چه يا اثر داره به هر طرف ظاهری شما نذید که خیلی بدی که در اون اعتباری بی‌مقداره افراد اعتبار ثابت میشه و شما در دایره واقع اعتبار اوثر يا اهمیت باشی برو با کارمو در به اعتبار که خودش یک نحن وجودی پیدا میکنه و ولی از کنیم مثلا مرحوماتوی می ما در وقت عربی عدوات شرط این رو که میادیم گاهی بر سر علت داخلی میشه گاهی بر سر معلومی بگیم مطلوب و عدوات شرط علت گفتیم راست هم درست اگر, اگر مرد در فریقیز نه چا ترد دادی اگر ترد دادی در ممکنی گاهی که نبیادی گاهی با میگ چون امور راقیه از ادهار ما خارجیه از و فعال ما خارجیه اون تابع خودشه یا علت هست یا معلوله با گفتر من عرض نمیشه لذا شما اگر بعد از این علت هم بیاریم رابطه برقرار معلول هم بیارید. اون ربطی به من نداره اون تابع خودشه اما امور اعتباری اینطور نیست تا من ادهار نکنم تحقیق خیلی بیاریم از نیست مثل موجه. موج موج؟ شیشه ای را حرکته آب موجود نیست موج ساخته ما ندریم تا بییشه به موجی نیست موجی ما درن نیست امور اعتباری اینطوریه تا شما اعتبار نکنید نیست نیست yes. و این اعتبار تا اجراز نشه تو واقعیت شما تحقق پیدا نمی‌کنه اینی که مشهور پیروان ظاهر موجوده اینکه سبب الهی چی حضور الانشاء ایقان معنا بلا بدون یقارن او این ایمان معنا و ایجاد معنا تو واقع اعتبار خوب دقیق کردی؟ سه اون مقدار تو به اعتبار پیدا میشه که شما ابراز کردیم مثلا اگر گفتید اگر مهمان آمد نام دهند همین که شما تو به آه اعتبار همین که بعد از عضاق شرط شد علم دهد کار ندهد شده مابل مدون باشه ما تو به اعتبار نیتون. این فرد بین اعتبار و امور حیثید این نفتید. که بعضی استاد میخوان بعد از ادات شرد ما به این معنی میگیم به علت یعنی بر این اساس مبادرت معنی لغت سال 2 این مسئله مسئله چیه اما این به عمره اعتباری نمیخواد مطلب اینه که به اعتباریات نمیخواد در اعتباریات اون چه که شما بعد از ادات شرد شما اعتبار میکنی. میکنید میگید اگر روز جمعه شد نمره یعنی روز در روز جمعه علت بر شما جعل واقعیت نداره به اون مقداری که شما ادعایی خیلی دکتر، و رضایی که شونگه الله من الله در اجماع نطفه اجماع روشن تو چشمتون ندار نمید تبدید اجماع اونا هر کشون این بوده شما ولی تواصی بکنید تواصی شما این نمیاد منشه آثار اعتباری باشه خوب دقیق بکنید چرا ما آثار رو اشتار شما چون در ما آثار شما اون اشتار رو با فعل انجام بدید خیلی میگن ابرام داره در این ابراز خوابی دیم دکتش کی شد؟ مکتش کی شد که امره اعتباری ابراز میخواد یک به اندازه ابراز ثابت میشه دو این ابراز هم باید و روشن باشه سه لذا در پرخواد معاملات شد دیده باشیم میگن لفظه کنایه نمیشه کار برد مجاز نمیشه به کار برد یونثی بود یا در اگوام رفت اگوام بهتاون ما از حاله تعلق می خوام در این سر یه حال عقلی برد و درست شد نه چرا چون امور انشایی اعتباری وجود ندارن و اگر بنا بشه در غیر حد ادراص صحبت بشه غیر حد ادراص یک عالم بسیار وسیعیه منشاء صلاح بنا بشه یا من به این شرط خایده میم یا قرارداد متوافق ما،, ما بر این بود میگن نکسان یوشته نشه بیان نشه ادراز ادراز قولی من احتمال دیمه درسته آیون نگم که زرز آیون تمثب رو کنه یه بحثی دارن که احتمال یقیقه در مکان رو گفتن اجماعیه باید مکان ما آساب درست من درستار که از کنونه اون آیون مبارکه هست بردارم چی؟ از افرد منون کنم میسا هم غلی در وقت اخری من این ان ار شما میسا میسا همون عقد لحظیه ما گفتون احتیاج دارم اجماعی کنسته تو کنیم چون فوقهای ما تنظر نکنیم من عقد میو کنم وقت اصل نمه میکنم میسا میسا عقد قرار دار کهره در این جایی میساق واضح و رو کن مثلا زنی زنه هست که ما با, با هم زندگی کنیم این برای ازدواج کافی با هم زندگی کنیم توی با هم دارد یک قابلیت این میثاق هست لب گفته شده اون میثاق ندیشه. من دیگه همین اومدی را اینکه که خدا اریب من است داریم دایی نداریم که به اجرای اشتباه برگردیم. بلکه از این مبارکه ان که تو فهم پسو بدم. کلا بگیم در امور روشن شدیم این دیگه بسیار لطیفیه در امور اعتباری هر ابراز میخواد ابراز ضروری میشه. همین که گویا از این یعنی سوما با این اینشا ایجاد می کنید خبزیزی وجود نداشت ولی من به اعتباری تو افق نفسینا اعتبار می کنن. تا به ابراز نرده اصلا توی وعای اعتبار بایش آثاربار می کنید دو به مقدار ابراز آثاربار می شه سه ابراز باید سریعی باشه لذا ما در, در لفظ باید سهر نکاح می کنید در سیده یه مفتح سکر شبه می کنید تو دو ملازمه 8 طور ملازمه به نظر ما در لغت عربی سریحترین و واضحترین و روشترین لفظی که درای در علقه زوجیت حدث از نکاح علقه است. مراد از ازدباش اون علقه اما تمتق با هم بودن مثال اینو مطالب آثار با اتبار میشه اصلش علقه زوجیت و اگر نخواهی در لغت عربی لفظی که خریح قلقه زوجیت مکتر توی که نیست لب سمیه در آورده زوجیه زربه شد حتی انکرسان میگفتیشون انکرسان معنی آورده زوجیه لیکن نکار در استعمال عرب خدا نکه به کار بارده شدون خود آمیدیش جمتیم شون این به معنای بطه ها آمده بطا. یعنی به معنی وقتی آمده لذا اون هم خالی از شوپنیست برای در قرآن ما استعمال شدونی لیکن زرب وجنات ها بلا ماغلازه دومین ها و من زربجنه آسان اونی که سریحه در حلقه زوجیگیت به در لغت حرقی شده الفاظ میگفته شده سریحه سریحه زربجنه اون میتاق قریب به قد کردیم پس بنابراین از کاریس که من خیلی روش اصلاح دارم که به اجماع به تحبات کمتر مراجعه باشه بیشتر داریشه های اجماع چون علما میمیدن یک عمره مثلا مبه هم یه ازمی یه بوفی و روش اجماع بود اللهم اللهم یده اجماع علا حده به که اقتناق و شرط از حیر مذکور فلعه درست این هست لفت بلکه بایدتر اون مذکور هم باید سریع باشه میتاب غلیب در دیگه چرا ما آتات رو قبول نکنیم؟ چون ابراز هست اما ابرازش ابراز شوشنی چون فیل احمد لفته لفت باید بیاد و و به نقدار لفت بعد ترمیدن به همه از صورت فلا اشتال فی فساد المعامله فیها لما فرز من عدم القصد فیها اله حلقت المعامله این مردنی که خوب همه از مرموزه شیاضی دقیق توضیح اگر قصد نزه شده معامله نیست و توضیح لطیفه من همون نیست که از روانی نمید کردیم مرالی ایشان که قصد به معامله نداره نه این که اصلا قصد نداره که معامله باطنی میشه قصد داره قصدش یعنی طول مها باطل. یعنی اولاً و به ذات این پول رو به قاضی برسونه گفت حالا اگر همیچه بشت... این صاف صاف به چندگیون بدیم زشت آبوری ما رو میبره میگه مقای خونه رو بپروختیم نمخواستم خونه رو بپروشه داری که پول رو برسونه اما خونه خ این مثلی که خود رو نیز که بکنه واقعا خود رو میشه نه اینکه که قصد نداره این مطلب مرحومه میزای شیرازی هم انصاف هم قابل قبول نیست به ذهن ما میاد که کلمه و فساد معاملت المهابابه ها به هر سه درگرده پس ایشون در یک فرض مسئله هم اشاره به قاعده اجتماع همونه ارکن حالا شد یه مقداری مطرف شده این آیه که عبارت کتابیشون رو بردین خود ایشان یک ردی بر مرحوم نیزه شیوازی ایشان یک بحثی کرده ادم مادرکه را بود من هنه المعامله لعجل اتحاد معرشا لا یودیب و ها لا یحلوم اشتاد لما مردی مسئله غرمت المعامله لانتباه و عنوان لعانت علال اسم ها من انها را ما یه متعلقات الاحکام امنی از اصعال المتلفی محا وجود المنروح که تبین منروحه یعنی راهی دیگری هم باشه تکتسار را باید یه عرض الگی محصلا از کدر کن تصرف در زن در مکان قرسی یک شباهات دیگه داره بهتر مثالش که همون لباس قرسیه اون بهتر مثال انتا مکان قرسی مثلا حیثوان در حکم الله یه فضاهمان فی مرحله جهل عب... از قشری و این نما یجمه یجمه آبین آمال عبدوتی مرحلت الانتصال به سوه اختیاره این اشاره به محمای اتصالی که غالب اجتماع هست دیروز سوزیاتشون هر سردن اون نکته را آقایی این گرفتن سوزه خشبه کنید نکته نظر آقایی این از کما یک مقام جهل داریم یک مقام امتصال داریم مقام و وزیفه اشاره مقام امتصال وزیف از مقام انتصال به مقام جرد سرگان نمی کنیم این خلاصه بسیحه چون از کلی مهم کار چیه؟ مهم کار که ما دو تا اطلاق داریم سله داریم لاکستن داریم حالا از در خارج مقام انتصال جمع کرد این جمعه او در خارج تقیید می زنه اطلاق رو روشتون این تو مقام امتصال آمد تو لباس فرسی نماسون این جمع تو مقام انتصار یه سریب مقام جمع یعنی چه یه مقام جمع که نفتی گفت صلوبه این صلوبه این صلوبه یه اینه که از مقام ریان افلاق رو نداره یه دفعه بکنی یه دفعه بگه لا تو صلیف الحریب اون از تو مقام باید تو مقام جمع فریب داره و ما الان خیلی ما لا سوه را دارم هیسه را یکی لاسو حریره در لاسو سلیفه لگه این بوده خاصه ده تو که این توی مقام جل تقید اما سلیها را تخصیب توی مقام جل تقید این هم مدد و اونم مدد حریری اگر مخاطب بخواهیم بخاطر بخواه قیل مکلبه مکلب جمع ده مثل قیل مکلب زرد سوگوط تقیی ما اصولا و یه تحبیر دیمه یه تحبیر است که اصولا مقام امتصال خاصا در اختیار مکلفه اون چی که در اشتیار مکلفه نمیتونه صدایت بکنیم با اون چی در اشتیار رو جاهل جا... جا... دشاره پس جمع کردن مکلف بوجه به سریاه نمیشه حالا من لبه هم میدهد فاضل ما حاصل ما فلایتی و حکم عهد منوانه لاحت این چیشون دوشته این ای اجتماعیه, ای ای ای اجتماعیه. ای ای ای اجتماعه. این که ایشون نوشه کلاتش اینه و توضیح بیشتر تا که کم نوشن توضیح بیشترش هم از که ما در احکام شرعی قائل به هیزیات تغییری هستیم نه هیزیات تغییریه یعنی برای ما خیلیت همه نقطه سریان مقام امتصال و مقام جمع نقطه اساسی اینه ما دنبال عنوان سلاطی خواهد تو قصد باشیم خواهد و دنبال اون قصدیم تو سلاط باشه این منشه نمیشه که اتحاد خارجی که عمل خارجی مرگوه استاد راه به این قرار دادن که ما در بحث تلات اجتماعاندن این بحثی میکنیم عملی که واقعا یکیه، چیه بلا حاضر آلو فریشتویش مرگویی هر دو پرسو از مرگوه مثلا کهیو محصر یا کهیو نخصیم عملا هر دو یکی هست یک هستم از مرگوه فعل هستم از مرگوه فعال چن حریقتر و واقعتر این عمل هوداری دو تا عنوان ازش انتزاع میشه هم عنوان نمازی هم عنوان قشی ایشون میگه در این جورجا نمیشه بگید دو تا حکم چون عمل هوداری چرا میتونید چون ایشون یه عمل هوداری واقعیه دارای ملکات رو گرفته نمیشه تصور بشه ایشا از این راهوارش یام روشن شد, شد. مرحوم استاد از این راستان عمل بهدانیه واقعاً یکیه وقتی واقعاً یکی بود دو تا عنوان, دو تا عنوان تأثیر نمی کنه مرموم اوستاد از این راه مرموم ها نمی و نظام یا مخلحت داری یا مخصره داری و نظام ما منز کردیم مرموم استاد در مسئله اجتماعانه به عشب دنباه احتناه از عشب دنباه احتناه چرا؟ چون؟ این تصمیلی که اینجا که شو میگه لا یکری از مقام انتصال به مقام جردی تو مقام جرده من ارز کردن این همیشه شو چرا زیاد تکار که ما هم که خسده ما یه مقام جرد داریم سه تا مبادی جرد داریم که یکی کمیلاتا که بعد حق و بغضه بعد اراده بعدم جرد سه مرحله بعد از جرد داریم ایکی یکی مرحله بیان به ارسال رسول به انزال کتبه دو مرحله تنجد و اصول به مکلفه سه مرحله امتصاله این چنده شد مجموعه شد سال سه تا قبله جهده و همان مبادی جهد سه مرحله بردنه خیلی تکار میکنن چون خیلی نقطهی لطیفی داره کسا میشه قائل به امتناه هست خوب ذکر کنیم همقوالی که ممتنی این دارم بازی به امتنارشون نه به حکم این مثلا مثل آقای خوبی آقای خوبی از دستال لا ایشون غالل به امتنار از اون مبادی جنب از مبادی مسته هر که شون امتنار خالفه این که میگه داری این تو مقام جهر نگاه میکنه مثل مرموم سریه جانستاد در دو مشهور علماء گفتن اگر بخواد نماز بخون در دار غصب و با قصد قربت میتازه اینا مشکلشون مرحله امتصال هست این یکی ذرافتیست که باید خوب مراحت بشه اگر کسی غالبه امتنار شد تو کدون مرحله امتناع رو دیگه؟ این تحمیل اصولی و خیلی هم لطیب دره یعنی این تحقیم چون به این صورت در کلمات اصحاب کلن می ما گایی برد از مساله در ما با این تحقیلی که ما حکم و مراحل و حکم رو کردیم خیلی راحت کسی میتونه تونه مثلا بگه من قاعد هستم تو مرحله فعیلیت می خورم یکی می گه نه مرحله مرحلی امتصال امتناعه مرحل... مثلا این گه تو مرحله اصل جل امتناعه مرحل و استاد از فرمه تو مرحلی ملا این خیلی لطیفه و اگر هم در مسائل فکر کنید خود تو باید مصدبه نستون جد فکر کنید این امتناع رو در کجا میبینید چون کسی که قائل به اجتماعه باید تو تمام این مراحل اجتماع رو تصور کنید تو ملاکات تو حب تو اراده و کراهن دقیق تو مقام جد و سه مرحله متاخر این باعث کشیدن حسیدی... مثلا از زیادی از اصولی تو مرحله ای انتصاب میگه این عمل مربوطه مود است. با عمل مربوط کی کرد؟ اتاق راویالله. یکشنبه که راوه. خودش میگه قصد حرام این اجمال کار، البته این باعث ایشان نوشته هم. این موافق با ایشان است. اما مربوط میشه شیزاده. ولی به این تنهاه که همه تو موافقت لحاظ استفاد ایشون مورد مجمع عنوانه رو حرام میدونه یعنی اون عمل رو حرام میدونه به خاطر که بجیان حالا به هر ها ایشون کی که این مجمع رو ما در متعلقات احکام میگی و اما پی موضوعات احکام و لاسیه ما پی مالا لوح زد نهبل عامل استقراغی کل اغوط فی قولی و را اغوط فی این مرحل جلد تشریح لوح زد محبوظت این وجود این استلاح متعلقات احکام و موضوعات و احکام رو چیزی آخر وقتخت هست من این اصطلاح و شر چ اووردن. از کردم این کلمه موضوع در اصطلاح اصولی به کار برن و معانی متعدد داره این اشتباه نش. این اصطلاح یکیشون بهکاروردن تصیح نکردن بهوارد اصطلاح اصطلاح محون نایییه به زانون لا دا این دقت میکن. این یه اصطلاحی متعلات احکام دارن و موضوع حافتن متعلات حفت موضور بودن. یعنی به عبارت مخراق اون چی که در لسان ذریع احس میشه خوب دفت کنید تارتن فوق دائره تلده این رو اصطلاحا ایشون موضوعات الاختان میگونه و تارتن تحت دائره تلده به تعبیر خودشان این رو ایشون متعلقات الاختان میدونه مراد از فوق دائره تلد یعنی تلد به اون تعلق پیدا نمی کنه این مراد اصطلاح ای فوق دائره تلد تحت دائره تلد یعنی این مخلوبه گاهی وقت قبیلت اینجوریه اون که فوق دائره ی این موضوعات رخ کن اون تحت دائره ی طلبه متعلقهات رخ کن گاهی اینجوری تعبیر میکنن گاهی اون قبیلت اینجوری تعبیر میکنن که مفروض حصوله یا مفروض و harbor یا مفروض اگر مفروض اگر مفروض هنجور بود اسمی موضوعات رک اگر مطلوب وجود بود اسمش متعلقات رو در کنیم چرا؟ چی بازه رو؟ مثل اون متعلق اون تحضاره طلب این متعلق بیرونی؟ من مثال بسن اکتمل آلم تحمیلش یک اکثر اکتمل آلم بود یک حیعت این یعنی وجود حیعت اشت دو ماده یک اکرام که این هیئت در زمین این ماده این اکرام رو ایشی اسمش داره رو این تخت داره یه طلب. طلب شما ترده خوده کنه به اکرام اسم این تحت داره یه طلب داره اکرام ایشون از اکرام تحضیح می کنه به متعلق اله. پس آلم چیه؟ آلم متعلق و متعلق هم بشینگر حکم وجوب اکرام متعلقه آلم متعلق و متعلق هم بشینگر موضوع هم بشینگر چرا به تعدیبیشان؟ چون آلم بهش تعلق طلب نشده به شما نگفتی برای به آلم ایجاز بکن در اکرامش بکن عالم رو اکرام بکن لذایشون میگه که اکرام مطلوب وجوده اکرام یعنی اکرام رو از شما میخوا. اما آلم محلوب وجوده یعنی اگر آلمی در خارج بود اکرامش بکن این تعدیبیشان روشنشون میتونی اصطلاحیشان هر بدی نمطوز الوجود و مطلوب الوجود متعلق مطلوب موجوده متعلق و متعلق مقروز الوجود مقروز الوجود یعنی اینو شما ایجاد بکنید اگر در خارج بود قاله نکاره شو نموش نیست و لذا آرم تحت داره طلب نیست که تعریفش بشه این تحت دایره یعنی یعنی هر شما نخواسته ایجاد آرم این رو که میشه فوق دایرهی ای طلب این اصطلاح کایی گفته میشه یکی تنگی به ذهن واسه عادت بخوبه درس ها فوق دایرهی طلب یعنی خود درخواست و طلب شما به آن تعلق نگرفته تحت دایرهی طلب نمی اکرام قرار بگیره اکرام رو می اما ایجاد و رو نمی کنید خاص بنابر این یک متعلقات احکام دارین که گاهی اوقات به ماده به تعبیر یا به میگن بحثو گلشید یا به میگه تحت داروی طلب نه همیشه اینه گاهی موضوع خاص داریم البته گاهی خود متعلم به خود, خود اقرار موضوع میگن در مورد حب مثلا وجوب نه خصوصا این اصطلاح هم صدا فرض نشه اصطلاح متعلقات احکام هم داری در مقابلش موضوعات احکام گاهی هم به موضوعات احکام متعلقات متعلم میگن این اصطلاحات رو حفظ این که جا جا نشه قصد بنابراین و اشکال این پازه لما اینه افروبه اهود اهود از قدیل مغوضاها و احکامه معنیش نیست که عقل رو ایجار بکنه اگر عقل بود با بکنه به خلاف عقل اصطلاحات عقل اصطلاحات خود سله خودش متعلقات تل احکامه اون بحث اجتماع هم نشوشی میا. همه تو موضوعات و احلام من یک اشاره آوره کردم آنه که مطالعه کردم که فردای توفیی دیدم فردای توفیی دیدم دو سه دقیقا گذاشتی در نیتا فردای انشاءالله توفیی بیشه و دیمه مقدر و کلمات شیعه سلام آنه ما یکی این از این اولایی بیدیوی دیگیم که در کل در